بسم الله الرحمن الرحیم درس امروز ما شما درباره تقسیم عبادت هاست اول ایره بفاهم که عبادت چی میگن خود عبادت چیست عبادت اونمو اطاعت از خداوند مطال جل جل و اطاعت از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تطبیق اینمی احکامه که خداوند متعال جلجالهو در قرآن مشان و پیغمبر سلام در احادیث شریف گفته اینمی رو ما عبادت میگیم بنان اینمی اطاعت و طاعت را که ما میکنیم اگر ای به اساس قناعت تسلیمی به خداوند متعال و به محبت به خداوند باشه این رو عبادت میگن یعنی که انسان با بسیار آجزی و خوشو یک امر خداوند را میکنه محبتی که با خداوند متعال جل جلاله دارن و اساس محبتی که با خداوند دارن این عبادت انجام میدن این رو عبادت میگن اینال اگر ما شما یک مثال براتون بگم شما در کامپیوترتون 100 گیگی دارین 100 GB دارند. فکر کنین که اینمی 100 GB کامپیوتر تان پر شده، پر است. فایل هایتان تکمیل شد. اگر میخواید یک فایل دیگر را دیک پیست کنین، یک فایل دیگر را میخواید دیک پیست بکنین، پیست کرده میتونین، نه می به خاطر که کامپیوتر بر تان جواب میده که دگر جای نیست. خب، این که جای نیست. خیما اگر می خواهیم که در یک فایل دگی را داخل بکنیم مجبور هستیم که یک فایل از بینیزی دلیت بکنیم و در جایزو یک فایل نویره پیست بکنیم همین این است نیست با نازل شدن آیت ای الیوم اکمل تو لکم دینکم الیوم اکمل تو لکم دین اکن. خداوند مطال جل جلوه گفت که امروز ما دین شما را تکمیل کردیم آیت شریف نازل شد که دین تکمیل شده یعنی اگر ما اتو مثال بتویم که دین صد جیبی داشت جیبی های کمپیوتر دین تکمیل شد به کامل است دیگه جای چیزی اضافی این نیست اونمو چیزی که خداوند متعال در قرآن عظیم و شان گفته و پیغمبر صلی الله علیه وسلم او را تشریح و توضیح کرده اونمو شامل عبادت میشه اگر یک کس یک چیزی بسیار کوچکی را داخل میکنه میخوای داخل بکنه آیا دین او را میپذیره؟ نمیپذیره پس آوردن یک چیز نو دیگه عبادت جدید در دین که او بدعت گفته میشه چه وقت میشه داخل دین شوه وقتی که ما یک حکم خداونده دلیل بکنیم از بین ببریم و به از او یک حکم دیگه رو بیاریم و داخل ازی بکنیم ایناله ما وقتی که یک چیز رو عبادت میگیم باید او عبادت اصل در قرآن و در سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم داشته باشه و چیزی که خداوند عمر نکرده و پیغمبر صلی الله علیه وسلم او را بیان نکرده اگر یک کار دیگری را ما میکنیم باس او عبادت نیست یعنی عبادت عبارت از اونمو عوامر و نواهی است عوامر و نواهی عوامر یعنی احکام مثل که ای کار بکنین و نواهی اموری است که او را خداوند گفته نکنین اونمو اوامر و نواهی است که قرآن از شان او را بیان کرده و پیغمبر صلی الله علیه وسلم او را مفصل تشریع و توضیح کرده به نان این عبادت است خب عبادت ها چند قسم است؟ عبادت ها اصلا دو قسم است کل عبادت ها دو قسم می باشه عبادت عبادت فردی هست و عبادت اجتماعی هست ما این عبادت ها را تقسیم کردیم به عبادت های فردی و عبادت های اجتماعی تقسیم کردیم به عبادت های فردی و عبادت های اجتماعی <تصفح> علتش چیست علت اساسی است که اگر ما تمام عبادت ها را 100 درصد بگیریم اگر 50 فیصد از عبادت های فردی باشه اینجا فیصد دیگه ازی چیست؟ عبادت اجتماعی اجتماعیست به این صاحب در دین مقدس اسلام اگر کس از جامعه انسانی دور میشه و میره در مقاره ها زندگی میکنه و از وسط مردم میبرایه و گوشنشینی میکنه و ترک دنیا میکنه این درست است که 50% فیصد عبادت خود انجام میده لکن 50% فیصد دیگه عبادت ها رو چی کردن؟ از دست دادم. به این خاطر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا که لا رحبانیت فی الاسلام در دین مقدس اسلام رحبانیت و گوشنشینی نیست در دین مقدس اسلام رحبانیت یا گوشنشینی نیست یعنی ما در دین مقدس اسلام چیز نام ترک دنیا نداریم بنامه ای که مثلا ای اعتقادات و ای عبادت ها در مسیحیت و در هندویزم است مسیحی ها اگر می یک کسی عبادت بکنن و خوب صد فیصد عبادت کنن میگه تو ازدواج نکن جامعه را ترکو و بیا در بین کلیسا منعیس کشیش منعیس راهب یا راهبه راهب یک پسرانه هستن و راهبه، راهبات یا راهبه یک دختر است که اینا خوده ما تخصیص دادیم به خداوند متعال و ما عبادت حقیقی میکنیم بنامان ما ترک دنیا کردیم و میریم در کلیسا 24 سال در کلیسا میباشیم در اندویزم چی است؟ اونا هم اگر یک کس عبادت حقیقی میکنه میگه تو باید ترک دنیا بکنی تو باید ازدواج نکنی تو باید غذاهای خوب نخوری تو باید سر شکمت سر نفست پای بانی تو باید از های زندگی استفاده نکنی در دین مقدس اسلام این قسم عبادت ها نیست در دین مقدس اسلام خیچی هست در دین مقدس اسلام اصلا عبادتی است که انسان باید رابطه خدا سه رابطه را باید تأمین بکنه سه نو رابطه رابطش رابطه ها رابطه انسان با خالق با الله جل جل الله جل جلاله رابطه دوم انسان با خود انسان باید رابطه ما با خود ما قوی و مستحکم باشه و سومین رابطه که ما باید او را تأمین بکنیم رابطه انسان با جامعه است که در این جامعه ها هستند در این جامعه حیوانات هستند و در این جامعه نباتات هستند نباتات و سایر مخلوقات و موجودات اینال انسان مسلمان باید سه رابطه را تأمین بکنه ما وقت مسلمان حقیقی میشیم که رابطه ما را اول با خداوند مطال جلجالهو جل تأمین بکنیم چه قسم؟ بعضی اساس میگه ولی من رابطه ایم با خداوند است به اساس فکر خودم اسلام ایرانا میپذاره اگر من میخوایم که امرای شما رابطه داشته باشم و شما از این رابطه ای من خوش باشین ما باید در رابطه خود با شما کار نکنم که شما متضررر شوید من باید من میخوایم که تو خوب رابطه داشته باشم ولی تو خوب دوست من لکن مشکل چیست؟ ولی مشکل من است که من دوست دارم لکن میخوام که تو رابطه خوب باشی لکن پیشیری کنی لگی سر تو یک فکاهی میگم کلیگی خنده بکنه تو میگی برادری خوان رابطه درست نیست تو باید وقتی که مرا دوستت حساب میکنی و میخی امرای من رابطه خوب داشته باشی باید رابطه باشه که من راضی باشه تو با سیستم خود پیش میبینی اینال بسیاری کساست میگم من خداوند دوست دارم خیلی وقتی که تو خداوند دوست داری و میخی با خداوند رابطه داشته باشی رابطه داری با خداوند لکن ما بدل خود با خداوند رابطه میگیریم نه خداوند گفته که اینی صفتم است اینی نام من هست، اینی اسماء و صفات من اینی توحید ما در ذات است اینی توحید ما در صفات است اینی توحید ما در عبادت است اگر تو میخواهی که مرا عبادت بکنی و رابطه‌ات با من قوی شود پس تو باید این رابطه‌ات به همراه من به سیستمی که ما گفتیم در قرآن از مشان. بس که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهت گفته، اما بسیاری کس هست میگه نه والا من خوب رابطه با خداوند دارم لکن به چه طریق والا من رابطه خدا با خداوند از طریق فلسفه پیش میبرم من رابطه خدا با خداوند مطال جل جلاله جل از طریق فکر خودم من فکر میگم که خداوند این طور است خداوند این است خداوند این است هر صفتی که کردم درست است حالا تو وقتی که صفت را می خداوند مطال خود به این صفات در قرآن عظیم شان توصیف نه عزیزه خاطر انسان رابطش با خداوند متعال جل, جل و وقتی درست تأمین میشه که چیزی که خداوند متعال جل, جل, جل و گفته و پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ما او را عملا تطبیق کرده. ال کار را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکرده در رابطه خود با خداوند ما الگو و رهبر و ما کی هست پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. لا اله الا الله هدف دین شد. و محمد و رسول الله رسیدن از طریق محمد صلی الله علیه و هدف هست. پس وقتی که که هدفت که خداوند است به او برسی و رضایت از او را کسب بکنی با چی طریق می‌دونی از طریقی که پیغمبر صلی الله علیه و وسلم برای ما نشان دادن نه به ما مثلا بدل خود والله با سیستم خود فلان یوتو میکنه یا را اسلام نمیپذیرم رابطه دوم انسانی است که باعث رابطه انسان با خود انسان قوی و مستحکم باشه رابطه ما با خود ما چه قسم قوی و مستحکم میشه میگه انسان مسلمان حقیقی کسی است که خودش شخصیت خود خودش حفظ بکنه. عطا میگه به خاطر اینکه شخصیت تو حفظ شوهن وقتی که میخوای به نماز جماعت بری و از دور میبینی که اون اولا نماز جماعت شروع شدن. فاصله هست میگه ندو. به خاطر که اگر بدوی این شخصیت تو بی‌وقار میشه میگه نه آهسته با سکون با س... با بسیار آرامش برو. خیلیست اگر یکرکات از پیش تیر شد بازوره تنهایی بخوان. اینال انسان باید رابطه خود با خود خودش مستحکم بسازه. شخصیت خود خودش باید حفظ بکنه و شخصیت خود خودش احترام بکنه. و اگر کسی احیانا پیش خود شخصیتش ضعیف است و مردم فریب میته باز این منافق است. حالا من به غلطی استاد فریب دادم رفتم از اینترنت یک چیز را کپی کردم آوردم بر استاد گفتم کل چیز را مسئله کردیم این صاحب بر ما استاد 20 نمره داد و استاد تو بازی دادم تو استاد بازی ندادی خودت بازی دادی به خاطر اینکه شخصیتت به پیش خود چی کردی خود پیش خود برای تشمت، برای گوشت، برای دستت، برای اعصای بدنت، برای عقل، برای قلبت خود چی معرفی کردی؟ فریب کار معرفی کردی. <تصفح> این دیگه فریب دادن وقتی کسی فریب کاری میکنه در حقیقت خود فریب میتند نه کسی دیگه فریب میتند. از این خاطر انسان باید اول وقتی که انسان با شخصیت کسی است که اول خودش خودش خود احترام میکنه. و اگر انسان خودش خود احترام بکنه باز دیگه مردم جامعه امور احترام میکنن. شما دو نفر است دو ریش صفحید 5 و سال سر دوشان. یکیش با شخصیت است شما دلتان میشن که برین دستایز رو مچ کنین برش بسیار احترام میکنین. و در پالویزی یک ری دیگه است که 5 و 5 سال است لکن خودش به شخصیت است، وقتی که استاد شوین این نفر اولی وقتی که امرویش بشینین براتان از ایمان صحبت میکنه از اخلاق صحبت میکنه از علم صحبت میکنه معلومات شما را زیاد میسازه اخلاق تان خوبتر میسازه کارهای مثبتی را که در جامعه کرده و تجارب خوبی که در ایره برای شما بیان میکنه بنان خوشتان خوشتان میگیم ولی چی آدم خوبی است در ختم صحبتش؟ ساش ماش میکنین از بش بسیار تشوری میکنن دمو قابل از رو فشی صفحید دیگه میشنیم که کو پنج و پنج سال از بعد قسم میکنه و ما از جوانی م تو جوانی م جوانیم م کاراررا کردیم و بسیار بد مااش بوده بود تا سر بام خ خیز میزدم که مچ می فل ما رو سل کرده اییم کهیه خواند ها رو خوش داشتم باز جگ پ صد گوش می اگر خواندن رو میکنه و... این انسان وقتی ای یک قسم حرکت میکنه شخصیت خدا. خودش به شما چی میسازه؟ بسیار ضعیف میسازه، پایین می سازه بس شما نه تنها برزو کدام احترام نمی کنین از پیشش وقتی که برامدین در دلتان و اگر در یک جایی یاد میشه که فلانی نفر مشناسته میگه آه مشناسته میگه آدم بسیار اگر در زبان نگویین در دلتان بگیین انسان بسیار بیشخصیت است پس در دین مقدس اسلام عبادت هاست. ای عبادت ها در مجموع انسان چی میکنه؟ که انسان باید رابطه خود با خود درست و مثبت رابطه خود درست داشته باشه. شخصیت خود خودش احترام بکنه. چشم خود را منفیست ایمال نکنه. دست خود را منفیست نکنه. گوش خود را منفیست ایمال نکنه. یک زن یک دختر جوان که هجاب میپوشه با شخصیت هست. حتی مردها به شخصیتی از او نمونه مثال بیان شدند که خداوند متعال در قرآن میگه درب الله لکم مثلا مثال هایی را که بیان کرده شما درب الله مثل لذین آمنون رأت فرعون خداوند مطال جلجالوهو بر مردها و زنهای مسلمان یک زن با ایمان الگو بیان کرده که شما شخصیت تان؟ از شخصیت خانم فرعون بگیرین خانم فرعون چخصیم شخصیت داشت و باز بعدی بر امامه که شما شخصیتتان از شخصیت یک دختر با ایمان بگیرین که بیبی بی مریم بود و ما مردها بگیره وا بلی شما مردها ما شخصیت خداما از این دو زن بگیره بله خداوند متوال جال جاله میگه که شما شخصیتتان از شخصیت ایزن و شخصیت از دختر بگیرین اینا چی کمال داشتن؟ اونا هم بگه کمال داشتن که بسیاری از مردها ندارن شما فکر بکنین خانم فرعون فرعون یک پارچه های ظالم خطرناک قصر بسیار بزرگ داره در دا بین قصرش چقدر لباس های لکس است؟ شاید بر خانم خود 500 جوره آخرین استایل لباس ها رو برش آماده می کرد شاید اگه تلاش میخواسم بگفم نه نه عزیزم تلاش پنج گرمه و ده گرمه و صد گرمه رو چی میکنیم؟ من بر های پنج صد گرمه میروم. تلاکت براد بیارم که ما تو کارای تلا بر بیاریم که تا به اینجوری دستاید کلش یک جای نباشه هر که انگشتار کنیم، علماه چیز. اگر میخوایی که پایوازی کنی برای خانم برادرت یا بر سلوی خواهرت، من بر دو پایوزیش یکهزار نفر خبر میکنم. این انال خانم فرعون نه متأثر و پسیه شد نه متأثر و قصر شد و نه هم متأثر و قدرت شد دو قسم انسان هاست انسان های طلایی تلا صفت و انسان های آهن صفت انسان های تلا صفت چه عادت دارن انسان های تلا صفت یکی از صفات شانی است که مثل طلا واره هستن. چرا طلا را کلگی خوش داره و چرا در بین مادن؟ خب آهن هم یک مادن است و طلا هم یک مادن است. اگر برای یک نامزدت یک لاکت آینی بیاری نه 300 گرامه. قبول میکنه؟ نمیکنه قبول. اما اگر یک لاکت 300 گرامه طلا بیاری خوش میشن؟ چرا طلا در بین مادن زیاد ارزش داره؟ طلا یک کمال داره؟ شما خود مسئلین انجینیریستین اگر باید بفامین تلا متاثر به محیط نمیشه تلا چی کمان داره؟ متاثر به محیط نمیشه اگر بینی یک کسی بشکنه برش بینی تلایی بسازن ای بای گوشت و خون و پوست که در سر تو هست به او متاثر نمیشه اما اگر آهن بینی جور کنی چند وقت باید زنگ میزنه درست اگر شما یک کیلو تلا داشته باشین و یک کلو تلایتانه ببرین در یک کسافت از ترس دوزا پت کنین در زیر خاک از تو گندگی هاست رو موجه پت میکنین خوب زمین یک دو متر میکنین رو طلا رو پت میکنین سرشون کسافات از هواست مرداریست میند چرا این کار آکادمی کده میگی ولی در روزا بگن دوزا زیاد است سمیر دوز نزنه تا که یک مابات یک کمک آرام شبه باز پس میکشمش. یک ما وقتی که شما طلا رو بین از لای بکشین خراب شده؟ متاثر به محیط شده؟ نه شده. اما اگر در ایک ظرف در ایک ظرف آهنی یک کمک آب آبانین یک دروست که در جایی ما دیشه زنگ میزنش ایش نمیزنه؟ این حال ما انسان ها هم امی قسم هستن انسان های تلوا هیچ وقت متاثر به محیط نمیشن. کسا هستن مسلمانایی که در اروپا زندگی میکنن؟ مسلمانایی هستن که در آمریکا زندگی میکنن؟ مسلمانایی هستن که در روسیه زندگی میکنن. در جایی که اونجا کاملا تمام انواع اونها آزادی میگه ما شما وحشت و حیوانیت. هر حیوانیت را که هر کس بکنه، کس برش نمیاد یه جوری کردی. ولی ما دیدیم در اروپا که دخترای مسلمان و پسرای مسلمان در قلب فتنها و فسادها ایمان خدا، هجاب خدا، لباس خدا، شخصیت خدا ایمان افس کردن میگیم اینی مسلمان چی هست؟ تلاسفت تلاسفت خیلی انسانهای آینی چطور انسان انسانهای آینی چطور است که امشب فلم دید تیرنام ها صبح فوران کلیش تیرنام شد امروز تایتانی کردید صبح که ببینی وقتن کلش تیتانیک شد دیگه رو صاحب رامبو را دید از روز جور میکنن رامبو آره دیگه رو صاحب دید فلانی رقاسه یعنی لباس پشیده فوران صاحب یام لباس اونمون رقاسه را میپوشن ازی حاضر هر شمال ای مثل یک برگ وارز که هر کس پفش کرد برگ خشک است هر طرف میره. و مثل یک خاسته که او هر طرف بودش میره شخصیت مستقل نداره زود متاثر به محیط میشه زود متاثر به دیگران میشه چرا شخصیت طلایی نداره که لکوان مستقیم پخبل مکانیم که بهار را باندی رازی که خزان ده استقلال ولری که ورانی بهار رازی که خزان را با نرازی هیچ دیدی پی وجود که تغییر نرازی ونه ونه ده لکه ونه مستقیم پی خبل مکانیم که بحار را با نرازی که خزان که پسرلیم سی ونه پی خبل زایی که ده که منه سی هم پی خبل زایی که ده جالبات که می همه گا مسلمان ده که کابل که اماغ مسلمان ده که اروپا لارسی اماغ شخصیت حفظ ده خب بعضی خلک دی تلیه اولایتنا مجرد که کابل تراور سیده بیا شخصیت کامل متاثر ده چه اروپا لارسی خب بیا بیخی مسلمانی لیا ده بوزی ایت بیا تنه نشویلش ده مسلمان ده که دا مسلمان نده مسلمان حقیقی است که درست از در تایاره غذای حرام است من همین خورم من مسلمان هستم. یا کسی به مثلا شراب میخوره نه من مسلمان هستم من شراب نمیخورم. والا اون دختر رقاص هندی اون دوسته این لباس ها رو می پوشه یخنش باز آستین نداره و این لباس غلطه دارن. درست هست. اون دوست بیمان است ولی من مسلمان هستم ایناله خانم فرعون و بی مریم زنهای یک زن و یک دختر با شخصیتی بودن که قرآن عزمشان او رو بر ما نمونی مثال و الگو بیان میکنه که شما شخصیت از از اونا بگیرین و ما بسیاری مرد‌هایی داریم که شخصیت بسیار ضعیف دارن پس وقتی که انسان موضوع دون گفتیم خدا انسان با خود مستحکم بسازه چرا؟ خانم فرعون متاثر به محیط نشد متاثر به طلای فرعون نشد متاثر به قصر فرعون نشد متاثر به قدرت فرعون نشد گفت ربی بنیلی این دکا بیتن فی الجنه گفت خدای یک خانه یه در جنتی قصر آباد کن. من چیزهای فرعون را و نجات من فرعون و عملش و خدای ما را نجات بده از فرعون و از اعمال زشت فرعون و نجات من القوم خدای مر از قوم ظالمین. خدای ما را از قوم ظالم و کافر نجات بده. برای فرعون گفت که مال توی تو قصر توی پیشه تو، طلای تو،, تو لباس توی غذاهای تو،, تو میهمانی‌های تو در مقابل شخصیت علی ما هیچ ارزش نداره برای ما چیزی که ارزش داره رضای خداوند است و هیچ که تو داری دلیل رضایت خداوند نیست و مریم ابن عمران الاتی احسنت فرجها و دیگه نمون مثال ببی بود که ای با که یک دختر جوان بود و سطها دشمن داشت ای باز هم اونم شخصیت و عفت خدا در جامعه حفظ کرد بسیاری کسا هستن که اگر برای یک برنامگه ساخته شود که از یک لوده جور کنه باز شخصیت خرفت کرده نمیتونه بخاطر که من که همه که بخیزم در بین مردم شورت پیدا کنم باز اکتای شادی رو میکنه عکت خرس میکنه اکت ایوانات رو میکنه شخصیت خود از دست میتونه از کسرت خامیز که در جوش خروش است چون پخته شده قابل دمگشت خموش است انسان های عالم و دانشمند و با ایمان و انسان با شخصیت خموش می باشن. بسیاری وقتا اون را کس نمی بر خاک نشینیم و از او آر نداریم اگه سر خاک از این خاطر اینسان با شخصیت متواضع می باشن تکبر نمی داشته باشن در بهاران سبزه کای بسنگ در بهاران سبزه کای رویت بسنگ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ علم و ایمان در قلب انسان متکبر جای نمیگیره در ظاهر شیطان به هزارها سال عبادت کرد ولی قلبش حسادت قلبش تما قلبش غرور قلبش خودخواهی هیچ چيزا در قلب شیطان وجود داشت حال عبادت میکرد میکرد میکرد میکرد لكن روز امتیان ناکامان چرا ناکامان به خاطر ازي که ظاهرش یک قسم بود و باطنش دیگه قسم و خداوند متعال میفهمید که این انسان متکبر است انسان خودخواه است این انسان متعصب است، این انسان خودپرست است، این انسان عبادتش دروغی هست پس ای چی باید بکنم؟ دید که ای ای اشتباهات داره و ای غلطی ها را داره و موجود به شخصیت است، بالاخره در معرض امتحان ای قرار داد. وقتی که امتحان آمد سرش نجات پیدا کرد یه سخوت کرد گفت انا خیر من ها من چه قسم بخیزم به یه آدم سجده بکنم چون تو احترام بکنم یه خاک است و من از آتش خلق شدیم. من یک کارو نمی کنم مثل که امروز هم کسای هستن من فلسفه می فهمم مبیسیار فیلسوف هستم بسیار دانشمند هستم مفلان هستم, مفلان هستم. از این خاطر وقتی که قلب نجیس شد باست تمام عبادت ها از بین میبرد از این خاطر انسان باید در خودسازی و شخصیت سازی خودکار بکنه و رابطه خودن رابطه دومی با کی بود که رابطه انسان با کی باشه با خود انسان باشه رابطه سیومی رابطه انسان با جامعه هست آلی اگر کسی رابطه با خالق داره و رابطش با خودش هم خوب است ولی با جامعه ارتباط منفی داره با جامعه ارتباط درست نداره با اسلامش درست نیست به خاطر چی؟ به خاطر از که اسلام چیست؟ اسلام رابطه رابطه انسان انسان انسان مؤمن رابطهش باید با کی باشه؟ با خالق جمع رابطه با خود انسان جمع رابطه با جامع مساوی میشه با یک مؤمن حقیقی کامل چه وقت ما میتونیم که مؤمن حقیقی کامل شویم که رابطه خود با خالق رابطه خود با خود رابطه خود با جامعه که در اونجه انسان هاست حیوانات هست نباتات هست و سایر موجودات دیگه‌ای که هستند. ولی بسیاری کساس میگه ولی من بسیار خوب مسلمان هستم بسیار خوب انسان با ایمان هستم و متدعین هستم ولی مشکلش چیه؟ چی مشکلش در است که رابطه خود با خداوند خوب ساختن لیکن رابطهش با خلق خداوند خراب است. ایمان اگر اسلام در مجبوع عبارت از عقیده هست عبارت از عبادت هاست عبارت از اخلاقیات است. یک نفر که اخلاق درست نداشته باشه به جامعه ارتباط نداشته باشه و اکثریت عبادت ها در اسلام است که پیوند و رابطه انسان را باید با جامعه با مردم مستحکم بسازند الان ما روزه میگیریم چه روزی ما درست قبول میشه؟ وقت روزی ما قبول میشه که قلب مهربان داشته باشیم، از حالت فقر و مساکین باید با خبر باشیم. یک نفر سرمیزش ده قسم غذا هست، ازی بخورم، ازی بخورم، ازی بخورم. هیچ ایران مونده که ازی ده قسم کردم شد زود بخورن. و میگه ما روزه دارستم. روزدار روزه دارست. یکی تقوه حاصل کردن در حالی که اینجا در امساجیش کسی است که افطاری ندارن تو از مهنت دیگران بیهمی. نشاید که نامت نهند آدمی حضرت سعدی میگه که او کسی که به دردی دیگرا دلش درد نمیکنه او کسی که از رنج دیگرا متأثر نمیشه و در مالش حقی برای مسکینا و فقرانه است این انسان میگه حتی آدم گفته نمیتونیم حضرت سعدی میگه ویش آدم نیست نه شاید که نا، نامد نهند آدمی و هیچ میگه آدم نیست و این میگه که نه نی من مسلمان هستم تو اتا این انسان انسان نیست مسلمان اخو چی میکنی؟ اسلام و اسلامیت و ایمان و عقیده ای باز خب یک،, یک،, یک،, یک یک چیز دیگه خاص خود دارم اینال دا مشکل چی است؟ مشکل دیگه است که انسان مسلمان باید رابطه خود با مخلوقات خداوند متعال جل جل هون ما رابطه این با دیگر انسان‌ها چه قسم است آیا جامعه مردم از ما میترسان؟ بهش ریکازم میگم من می مسلمان هستم لکن مردم از پیشش می ترسن چرا مردم از پیش تو می ترسن؟ به خاطر ازو که تو مسلمان حقیقی نیستی در حالی که پیغمبر هستن بسیار نرم پیغمبر صلی الله علیه و سلم خدا اون چی قسم که میگه فبه نعمت من الله لنت لهم ای پیغمبر خدا این نعمت خداون بود که تو بر مردم بسیار نرم شدی. ولو كنت فظا غليظ القلب لنفض من حولك. اگر تو بسیار تنخو می بودی و تو بسیار بد اخلاق می بودی مردم از اطراف تو می رفتن.